در وضعی کلمات مرحوم محدث استراغادی بود در عدم حجیه که تبیه ادارکاق زهنیه یا قطعیه خاصر از بیر کتاب سنن به سردیر آوالیان ورفت کنیم مراد جدیشون الهات اصول با که خب بعضی یا که جمعان دعیل و بوده بعد یا شن در بحث اصول هست ولو استراحا دعیل عقلی نیست یکی از اون مواردی که ایشون ذکر تا رو دو مورد ایشون رو اجمالا مناسب با بحث بررسی کردیم که شامل استثابه که به تغییرشان ایشون جزو مواردی است که عقلیه و اصولین اون رو رداتی دونن راجبه استثصحابشون بحثی یاد در توضیحاتم تا دو سه ماه اخیر عرض کردیم دیگه واژه بحث نمیشیم اون چی که اجمالا مناسب با بحثه من عرض کردم چرا هرارن بعد از فیرم بر در زمان صحابه و طابعی اصلی صحبت از موضوعاتی شد که در شریعت مقدس احکامش نیامده با این قید اینها با اموری برگشتن من این از اون امور اصطلاع خودشون رعی بود که ما به اینها بهش خیاس بفتن. خود اهل سنن که توضیحات اصطلاع گذشت و چیزی شبیه قیاس هم اجماع منظرون چیزی شبیه قیاس هم استصحاب بود و اکثر من در کتب و اصول قدیمه مثل معالم قیاس استصحاب رو توی یک با هم و اون سر همینشم این بود که اینا می‌خواستن که در جاهایی که موضوعی حکم نداره به یک مناسب او یا مشابه او رجوع بکنن اونولشه مشابهت رو اینجور جور در آواده یه دفیر مشابه او هست در آثار از راه آثار در اصلاح جامعه یا علت میخواستن سرای آن بدن اسمش ریاض شد. یه ل مشابهت بود در آثار نبود مشابهت یعنی یک جامعی بین دو حالت بود این رو اصاحح اسمش استاب گذان یعنی یه وقتی میخواستم بگن شراب انگوری حرام است به نصد کتاب پس مثلا شرابی که از درنجی اونم حرامه چون علت اسکار یعنی از سوال این بود شراب درنجی حرام هست یا نه شراب انگوری میادن میاندن اینجا جواب میدن شراب دره اگر مسکر باشه مثل شراب انگوری است وقتی میاندن بررسی میکردن که علت و غرمت شراب انگوری اسکاره مثلا مالیه بودن نیست تعمیشی خصوص اسکار حالا اگر این اسکار در شراب از برنج بود پس اون هم حرام این شو کیا که دیگه از یک موضوعی آمدن خوب و جریان بده در حکم دیگه این اینجور هم که تمام موارد این سریان درست بشه این سریان در این موارد اونن جریان بده این شود وجه جریان هم جامع یا علت که اسکار باشه یه نوع دیگر پیدا کردن برای سریان که شبیه این بود. و این بود که اون جامعه وجود داشت حالت مختلف بود. اون جامعه بزن سرایان میدید. این از این این شبیه اون شد. من نکات فندیشم صابقا چند بار سوزی هستم. خوانی تکرار نشد. مثلا خانمی که انقطاع درم شده. انقطاع خونه حیث شده. خب میاد ذات این زن که حرام بود وقتیش. حالتش عوض شد. وجود ذهن عدم ده از حالت وجود ذهن جریان دادن بعد آمد گفتن حالا میاد فقط در اینجا جامع اون ذات بود یعنی ذات زن در هر دو حالت محبوزه اون زن قبلا ان حالا الله نداره اون ذات زن که در دو حالت محبوزه این جامع کافی است برای این گفت حالا توضیح دست من فعلا تصویر ذهنی رو کنم پس آمدن در یک مورد قیاس و در یک مورد استثاب رو به کار بردن برای اثبات و حکم کلی در چی شد؟ اثبات و حکم کلی که زن بعد از انتطاع مثلا خون هم یهران وقتی تیهان یا مثلا درباق خیار شبیه حکم ولی می گفتن اگر خیار آنما ثابت بشه استصحاب میکنیم ولی که علاق ترافی باشه استثاب برای خیار یا آبی که نجس بوده کر بوده بعد خودش نجاستش خود به خود پاک شده قرمز بوده توش خون ریختن حوز بزرگی بوده قرمزیش از بین رفت بعد اون قرمزی از بین رفت نمیدونیم آب پاک شد یا نه رنگ خون نداره ن آن آم. اما چیزینبش وحصل نشد حالا باران الان هست یا کری یا نهری به چیزی هم وحصل نشد استسهاب بقاعه نجاست میکردن روشن سه سرشم واضح بود آب تا آب سابقا رنگ قرمز باشه حالا اون نداره آم که عوض نشده سابقا نگه از اون حالا نگه است اصفصحاب خیار اصفصحاب نجاست اصفصحاب برشمع این ندیر افکامی توان اینا شروعات و حکمی کلی هم این بود البته این محل کلام بود اینطور نمو که یعنی باشه درسال هم خوزن نمیشه شبهش هم واضحه بیار سابقا این خواهان خون داشت حالا نداره اونه حالت ماله حالت خون بود حالا ندار سابقا این آب گرمز بود حالا نیست، نیز اونه حالت ندارد الان آسانی من نیمونم با در بحث استثاب شد پس مرحث ها مثل مرحث قیاس از اول مطرح شد و خیلی هم مشابه قیاس بود الان وجه شبه کامله بوشن شد در قیاس از موضوعی به موضوعی بود به جامعه علت که علت رو استخشاف میکردن در استخده ها موضوع واحد من حالت ان اله حاله بود از این حاله بکشن به حالت دیگه اما موضوع واحد بود همون آب بود یا همون خانم بود میخواستن از این حالت به حالت دیگه بکشن و سر سریان هم وجود حالت سابق میبینستن اونجا سر سریان هم علت مشترکت سر دید. سر سریان میدارن وجود و حالت حسابه وقتی که آمد استسحاب مطرح شد دو دلیل تقریبا در کلماتشون محسوس بود از اول یکی این ارتکاز مردم آمد این ارتکاز هم نه به معنی عقل اصطلاحی یعنی آمده مردم من محساب آزیزه هم من بچه بقال اتا آزن همه نه اینکه خصوصه مثلا فلاسفه یا بکنه اگر ازش میکرسیدن مثلا پرسون شما میگید زیر زنده تو میگه برزی روزیدن خب دیروز موقع میزه میگید میگه خب نه مردم ها عادی ازتصاف بکنن میگه شون این بودی اپتکاز بود حالا این مراد مولا محمد امین ولی از عقل همین اپتکازه خب در قسم این عقل استقاقی نیست نمیخویدن تو اغلا و فلسفه و و حکم ها و علمه ها مطرح باشد دیشب زیادی دیدم دیروز جا خونه بوده بهش خونه خراب شده من دیدم تو اون خونه بودن چطور آشی بیشتره که الان پس مراز اونها این ارتکاز این بود حالا آیا مراز مهاجمان مهاجم در نیست رضوالله از اینکه این موجب هسته آیا این منلمرازش شد؟ به هر حال یکی ارتکاز بود این ارتکاز من نه تنها این ارتکاز چون اون دیگه ایسا من نمو با رو بحث بشم. اخیران هم اشاره کنم. دوبوم من بعد از موارد که شارعه حکم به حالت صابقه کرده بود. موارد خاصه بود. مورد مشهور معروف بشن اما مسئله وضوع بود. چون از فیرنبر نه اصول از شما ممکن است. یه احساسی بکنه اما تا صدایی نرد تا بویی نشنبه اون مثلا وضوعش باقیه. این هم چه گزه به اما آمده اما الاتور قبول داشتیم که اون موردی اون موضوع خارجی هم هست موردی است. هست اون را به استثال و احکام کلیه نداره، باشه باشه این وچه بعد بعدها در رابع استثال این شکلت مطلب اول شیعه افتکاس بیشتر به بی این لغت تفسیر شد القطق به حدوث یو جو با غنه بالبقا این تقییزاً حفن عقلیه مثل اون ارتکازی واضح بود این یه شکل دیگری روشن شد چه شد؟ الیقین و بالهدوست یوچه با لنه بالبقا تا انسان یقینی خود، این زن آوره برای بقا شاید مراد مولاد محمد عمد نیسته که دلیل عقلی گرفته مرادش این باشه این بود از طرف بیدیه بین احل سنه زنه در احوان حجیت دلاشت روشن شد نظر احکام پس در حقیقت استطحاب روشن شد صور بود اصل اولیش دو صور بکنی یکی ارتکاز امدام تحریف روشن شد یکی هم مسئله یه بعضی روایات خاصه به نفس سنت که مزرد شد این ارتکاز روی تقریب فنیل کردن این جور شد علی یقی ما بالخدو سیوری با زن نه بالبقا یا همون ارتکاز که یک ارتکاز و اولفیسی و او اقلا بود اون از در شاقه شد خود یا اولا نورد از اون برم آمدن این ها زن در احکام رو معتبر کنستن خوب درقه بکنید زن در احکام پیش اهل سنت معتبر شد اصلا تدریجای گفتن اگر مشهر زن به حکم که این حکم واقعیه این اشکالات مولا محمد خب ذهنیت مولا محمد علی لیکن این ذهنیت ها این بود. اصل ذهنیت ها این بود. نیوزی شاید روچن بشه. وقتی هم که علمای شیعانم برس رو مطرح کردن انصافا این احساس نبود که استثاب از خصائص اهل سنته. من چند تا کردم. بعد از افخاص اصول ویژیگی مذهب به اصطلاح خاصه مذهبه مشخصه مذهبه چهره مذهب. مذهبه از این قبیل نبود. سنی ها میاده ق شیعه از قبول کرد نه از حالت مشخصه مذهب در آمد و نظام مرحوم علامه بحرانی به نظر من این اشکالی کنه چون درست است که علمای شیعه هم همین نکردن خدایان سنی هم عمل نکردن عمل اصلا قیاس نمیکنه بعضی شبیه خیلیام شدید در امثال هست این زادریات ها که چطور شد که این شد که اینها تصویر کردن استصحاب حکم واقعی است نه که استصحاب حکم واقعی اینا بودن گفتن زن مشهد این اگر روان این واقع میشه این, شو تو بحث این رو عرض میکنن نه هر زنی اما زن خصوص مشهد یا نه هر زنی چرا کن میگن مشهد با شباهدی که جمع میکنه اگر به زنی روسته شعاره او رو امضا کرده به روان حکم واقعی اونم دوباره معذبن جبل دیگران که ان شاء بعد توضیحش خواهد یا داد یا اصولاً مخن دعای سیره اوغلاوی بکنن خوب بهتره که در دیگه چه میشه سیره که بعد اینو میگن که زن حیات باشه اینا حرفشون اینه من اجمالش اینه هر خیلی به عجیبه اجمالشون میگن تفسیرش اونجا اونها مخن میگن نفس این شما الان دو تا معمار این خونه 200 ملیونی میگین خونه 150 میگین کدوم یکی راست میگه دقیقاً فیشر تیزانی فقها میگن اگه شک کرده هر دو جمع بگیم معادل میگیم یعنی هر دو راست میگن همین دیگه هر دو راست میگن. این توضیحش چیه خوب دقت بکنید اونا احکام رو از قبیل این گرفتن خیلی از اون بود که که ظن و حکم میشه واقعی چون طرز اولش این بود که شارع در اینجا حکم نداره با یک می‌ذارم تصور می‌کنه با یک به حکم هست خود خونم یه قیمت واقعی نداره رقبات اوغلاییه خود قد خود خانه قیمت واقعی نداره این آقا رقبات اوغلاییه رغبت اوغلایی تشخیص میده 200 اون رغبتا ها تشخیص 350 آقا خود شما تقاضا هم می‌کنی می‌گم چند بدن این چند بدین ارزش نه واقعی اون ذهنیتی از شما روتون کنه. هر دو رو نفسوده همه نه واقع معنای تبییه خارجی. اینا تصورشون می دهند. این در می رو روشن شد در مورد احکام میخوان همین بگر. میگهنی چطور اگر یک مقدم آمد یک ک عادلییه و چ را خونه خودن شما قبول هم. اما معوار آ گفت دوی قبول میکنه و در مقام حکمان میگین هرزار جمع بکنه معدل میگین چون هر هرزار جمع بکنه؟ چون هرزار قبول دادم نمیگین ترجیح بدین نمیگین تا آرز میکنه تساغت میکنه سه نفر گفتن سال جمع میکنه چهار نفر گفتن هرچه اونا تصورشون اینه احکام ها نطور قبیله نزایلی داره اشباهی داره ما با مراجع وقت فقیل سعی میکنه به اون نظار این فقیل گفت این نمیشه واقع اون فقیل گفت اون هم واقع تصور فهمده؟ تصور زنیت این ها چه بوده؟ پس نتیجه این شد بر اثر گذشت هزار سال مرموم ملا محمد عمید انصاری گفت اینا استثاب رو در احکام جاری که نموتن حکم واقعی درست این اما شوشت این رم بود چون زن و شهد و قائل به تصویی بودن می شود واقعه ماهات قائل به تصویی بودیم که ماهات قائل به تصویی نمودیم <تصفح> و در کلمات و علمای ما هم قبل از مولا محمد انصافاً مبحث استثاب رو بعدشون روایت زیر کردن اما بیشتر رفتن روی همون عنوار اوهلایی و ارتکاز و و یقینه به حدوث اونجور زنه به بقا اگه هر کن لذایشون اشکالشون محرفت لن و راستان هست این صاحب این بحث ایک اشکالی داره کل بود عرض بکن لیکن همون قبل از زمان ایشان نعرف کردن مقموم پدر شیخ باهی محمد حسین عبر سامده حالسی و عاملی رحمه الله ایشون در یک ای داشته که برای شهر تحماس نشتره عبر و تحماسی در اونجا استصحاب رو به همین حدیث لاتنقض <تصفيق> میان اولین بار در شیعه ایشان بوده مجرای بحث استصحاب رو از اون بحث تعلیلی ور که کاضی کار کردن از و وقتی اطلاق لاتنقض این یعنی همه جا رو میگیره یعنی این لاتنقض دیگه اختصاص به مورد مردخور. خود مورد خود خوب واضحه کسی چورتش واضحه نه اینکه فاضل نداریم ما مثلا در وجود درس و چنانکه لاتنقض این از عموم تعلیلیشون می‌گه عمل گفتن استصحاب استصحاب اخصه مورد نداره در چنین موارد البته این قبل از ملا محمد امین استرابادیه اما توی فقه شیعه جا نیفتاده بود اما الان شما براتون کاملا جا افتاده ان زبان شیعه یک کاملا جا افتاده استصحاب رو با وجوه عری درست می‌می‌دون با اخبار کنه. میزنه شما الان کلام علامه محمد امینی استرابادی رو می‌خونید تعجب می‌کنید راست همشه چون در اصولی عوض شده دیگه اون وجه تجزیه اتکاضی زرد شده میشال از باشه در داره برای نقل موسیان داره که استصحاب حتی, حتی به حیوانات هم جاری می‌مونه <تصفح> نویشه قرعه اگه آشا نشه میگرده که چون تو کرد نوشته دیگه یعنی استصحاب اینقدر قویه که در حیوانات هم انسان در این وضوح زرد شده اما الان در اصول ما در این سال سال اخیر علمای ما مخصوصا بردشه رفتن روی مجاید روی بردشه اصلا اخباری عرب شدون استثال که مرحوم مولا محمد عمید اترابده اشکالی که کلت بیشه شد و این این علمای بردشه در مسائل استثاب و ترتیب و اصول و اصل و مسببی و تقریب و طرق و تفسیر و تعلیم و استثاب کنی و جزی و تعلیمی انصافاً مساله بسیار زیاد گفت نباشه، اما که خیلی کار کردن که کلن در کتب اهل سنت ما مبارس استثابهی که مازاری اونا ندارن ولی این اشکال محدث استثابهی هم کلن منتقی شده دید. چون کلن رضا و احواه اصلا دیگه اصلاً صحبت عقلی و علیقین و به حدود سیجو و زنده به بقا. چرا؟ خنده‌ای اصحاب مختار از زمان شکل زمان زمانش قبلشم بود دیگه مثلا کتب درسی ما دیگه تو حوزه های ما مصلل تو که اولی علم اوج زده زنده خب از علی ما به خصوص جنوب غربی نره یا حوزه یعنی ما که زنهالو از ما شهدن باشه نیست. دیگه پس این اشکالی رو که ایشون فرمودن در باب استصحاب اولا من تحلیش کردم چطور ایشون عقلی گرفتن و روشن شد که این اشکال انصافاً قابل دفع بوده و فعلا هم بزرگان حزیمه رو دفع کردن دفعش کردن به ارجاعش به اخبار و ان شاء الله در بحث استصحاب خود ما بازی یک نقطه نظر دیگه که اون در همون جایی اخیرا تو توضیحی داده شده که دیگری مخاطب وارد تفاصيل میشن رو می‌دیم برای برد از جمله‌ی که ایشون من خوندم مطرح کردن حجیت ظواهر کتابه از این بحث عقلی نیست این, این بحث عقلی نیست این بحث اصولیه راست در این که علمای ما به زواهر کتاب عمل می‌کنند، اجمالاً به اشکال نیست لیکن از هر سابرن هم این مطلبی که بوده اهل سنن بیش از اندازه به زواهر کتاب که عمل کردن مثلا فرس رو بوجه اکم و گفتن چون واق برای ترتیب تر تر تر نیست یده یاد این قبل از هم همیشه شست دست چپ و راست مقدم و آخر است به اخلاق عالی که این مصارفه بعد از کردیم دی از آیات که اصلا ظاهر در جهر نیستن بهش شوسو کردن حتی برایش مثلا اف من منکان مؤمنان که منکان فاسقان لایستمون مؤمن خاص کافر مساوی نیست می گفتن کافر بیه نداره چرا افتی بود افتی من کار موزم که من کار خاص بگم افتی همون مجرمی نکرد مستقی ابن حد سمسط میکنه شو از نه این که من خیالا نهت میکنم ابن حد زهر این آقای میکنه میگه پس کفار دیگه نظر یه مقدار بحث اگر مراد مرغوم استرابادی این است تمسوک به خیلی از آیات رو در شعر و تمسک این بود انساباً اشکال اصولی داره اشکال علمی داره اگر مراد ایشان اینه حد و ایشان خب بلا مثلا اصرار اهل تو همین بوده اصرار اهل رو این بوده که اگر میخواد آیات خصوصاً آیات اخلاق کلا حتی آیات عبادات اخلاق اگر اینا میخواد تفسیر بشه اینا باید با سنت اصلا من هم تفسیر بشه نه ولی گین تفسیر و وجود آن میدیا که ام اتلاف داره. نه، من پیغمبر اکنون در سال بیست و سی سال، دارم من واجب مکردم که این سوال نمی‌این سوال نمی‌آید حکم. اینکه قرآن با سنت سوال تفسیر بشه تفسیرشی نمود جود یعنی پیغمبر همون سالو که ما را ایتمونی اصلی، همون صلات خارجی رسول الله، اینو معلوم بگیم با عظیم صلات، عظیم صلات تنها تمسود می‌کنه. بگیر احیمان سال اصلاح داره صبح که نماز شاره کن نمازه این اطلاع ای نداره حالا علماءی ما الان اخیران بیشتر میان در مقام احمال یعنی در مقام بیان نیست در مقام اجمال هم نیست احمال حالا به از میخوان در قرآن لفظ احمال و اجمال به کار برده به جای اجمال میگن در مقام تشریه که صحبت هایی هم در این جهاز سالو من گذشت بگ پس این بحثی رو که مرموم استرابادی پرمونه که زباهر کتاب بجت می اگر مراده ایشان اینه اون مقداری که عقل سنت به اطلاقات و عمومات کتاب عمل کردن درست نیست راسته این مطلب ایشان درست نیست با قبول بکنید علمایشی هم قبول دارن اصلا این اختلاف تاریخی بین ما و اوناست اما اگر مراده ایشان باشه که ما اصلا اطلاقات کتابی چی می کنم کناب بلابت سن تقریر نموشدری ای ای این موضوعی که ایشون یاد داشت خب بلا اشارات خیلی از جاها اگر ما گشتیم در روایات تفصیلی نیامده بود و تقریبی نیامده بود بیان خاصی نشده بود می توانیم به اخلال این نیست که اصلا آیات کتاب هیچ کدومش در مقام بیان نباشه نه, نه این صد نیست و بعضی هم خصوصا بعضی از آیات دارای خصوصیته کاریهای در خود آیاته خصوصا که ما صرف فارسیون که در عددی از روایات خود اهل بیت به آیات یا تمسک کردن یا به اصحاب گفتن تمسک کردن و تایید فرنده اصولا از مجموعه شواهد روایات و اینها اینطور فهمیدیم که انصاف بدهسته خود قرآن که بر عنوان سقل افسره اصلا مسلره تشریر و از مؤخرا این بحث که الان متارز به نام قانون اساسی این تقریباً بعد از انقلاب کبیر فرانسه اصطلاح جمهوریزه اولیه در اول فرانسه شد اینا بین فکر کن که هر نظامی برای خودش یه قانون اساسی داشته باشه شعب از دیدن نوشتن قانون اساسی و هر کدی ما در اسلام ظاهرن فعلا برعبر هم این مطلب را قبل از این 2 صد ای سال قبله این مطلب رو هم قبل از اینها بهمنند به صورت قرآن مثلا قرآن یک متن قانون اساسی بذات هرچیز اینه که آن آره اساسیه که ما الان داریم روی جهات قانونی فکر می‌کنن، قرآن کریم روی جهات عقاید هست تاریخ است، فرض اینه که اخلاق هست، سیر هست، همه چیه. دقیقاً این اساس دیدگاه قرآنی اینه که مثلا فرض راجعیه به تاریخ. یه کلیاتی راجع به تاریخ اون رو داره. جزئیاتی که مثلا لوتر رفت ببین خانومیشون اینجوری گفت، بونیشی اینجوری گفت، بی مهمونا اینجوری گفت، به این این کارهای ریز رو در روایات آمده اما یه کلیات تاریخی که اینها در آیات موارده آمده اخلاقش هم همینطوره اقایدش هم همینطوره تاریخش هم همینطوره فقهش هم همینطوره یعنی به عبارت اخرا زالش کتاب لا رغفی و درمتقیم این هدایت برای همه جهازه لیکن این هست که یک نوع اون ترکیب های کلی و اساسبندی شریعته خب در اونجایی که شارع بقول خداوند در قانون اساسی است که مثل اصل اولی هست که کشورها رابطه داشته باشیم مگر اون مواردی که قانون بعد معایر میکنه شما ظاهر آیه این که اوحل لکم و ب... اوهلت لکم بهینه الانام الا ما یصل علیکو. اینا مراد همین باشه. اصل این یه تعبیر قانونی باشه. بله در قانون اساسی الان هم در دنیا متعارده به عنوان مثل ماده قانونی بهش مراجعه میکنم اما برای کلیات قانون اون مراجعه میکنم الان هم مراجعه اصلا دادگاه خاص قانون اساسی گذاشته، قضاق خاصی که کارشون شرح و تفسیر و تنقیه قانون اساسی. ما در اسلام رو گذاشتیم اما با عنوان احلقه یعنی نقطه اساسی اینه احل سنت قبول کردن گفتن صحابه آمه گفت بابا با صحابه غیر از این کالا واقعا جاهل بودن نادان بودن ادیشون شده کمی اطلاع داشتن چون از مجموعه آیات و روایات هم آیات و هم روایات نوویه استفاده شد که تفسیر منحصر به احل وقت. لذا هم ان شاء الله انجام میدیم ایده از اولیون‌ها احتمال داره که مراد اخبار و از ائمه جزا و هر کتاب رجوع اهل سنت درست حرف درست این مطلبی که درست اگه مرادش این درست این جزء ما مشخصهای مذهب این جزء مثل استصحاب نیست این جزء های مذهب ماست که در فهم قرآن تفسیر قرآن در جهات مختلفه چه قواعد چه تاریخ چه, چه پس مثلا همین تاریخ که قال الرحیم لعبیه در, در رویات ما آمده که این بوده چون میشه لعبیه مشکل باشه در تاریخ همین رو فهم در رجوع به احل بیت این طور نیست که فقط به آیات احکام باشه کلا مبدأ برجع و معیال تشریف آیات الهی و خصوصیات سنت و خصوصیات این در قرآن هست این در پیش تفکرات شیعی منحصر به احل بیته اگر مراد ایشان از عدم همون بیاده کتاب این باییه خب درست این مطلب سعی که من این مطلب صحیح اما این مانع نمیشه که زواهر کتاب در حدود خودش دلالت نکنه. پس مراد مرحوم استرابادیه مقدارش درست اما افرادش انصافا درست به نظر نهیه مطلب دیگری که ایشان هم نقل کردن از آوانان مثل محروم معقل هم خودشون اومده یک در مدالیل لحظیه مثل مفهوم موافقت و مخالفت و دلالت ایمان و اشاره و تنبیه و از این صحبتایی که کرد خب اینا هم ایشون عقلی گرفتن و یا اصولی اصولی بودن درسته اما عقلی بودن شو میخوان به چه صورت مثلا اینا به عنوان هر به که مثل تنبیه و اقتضاء اینها اینا احلی به این معناست یعنی یه مسئله که در دیوان که قابل سوال نیستن این باید یک تصرفی بشه خب این کاری که این کار مثل, مثل بدیهیات میمونی یا بگیم مراده از قریه اهل قریه همه احل اختاده یا بگیم مراده از قریه که شده این اصلا لغت ثابت نیست که قریه در بیوار قریه مجموعه در بیوار و قریه مثلا رساله قریه یه دفعه در دیگه قریه در بیوار پس یک احل در قریه خب ممکن شدیم نه چی ب قریه این دهدر این دهدر و دیوار و افرادش هم باهم رو بابشو بودسار همه روزه قریه زمین جراحتی همه روزه قریه به هر حال این بحث عقلی نیستونه من نمی پاهم که حجت نباشه نمی پاهم یه دفعی که شما هیچ بحث نفرین نستن چشانس رو من می کنیم بیرده که نمیشه این معناش اینه که جو علم گرفته میشه اقتصادی باشه این فلسفی ندونه اجتماعی ندونه روانشناسی ندونه روانکاوی که میجوش تمام اونم بدون برنمی‌خوره که این که قابل قبول نیست که نمی‌شه نرفی جو. یا این مسئله قرینه قرینه این جو معنا کردی اینا که بحث عقلی نیست و یا مثلا آیه مبارکه هم دو افسال اون 30 و یوزر هولله کامل میگن از ضمن دو که اگرله هم 6 مورد خب شما نباید این اسمش عقلی بگیزد این یه دیزده فهم و عروفی است ممکن است بگیر نظر اعتبار قانونی به این لوازه رو شکل نمیتونه خب ممکنه بگیرمون ای آیه نازر بیه نکتر است نازر نکتر دیگر این لازم نیست که این تا آیه نازر دن این بحث ربطی به عقل و این قسمت ها نمیتونه راجبه مفهوم هم در بحث مقایین ما پنج رجبره حجه دیم مفهوم ز یه وجهش رو من عرض می کنم بقیهش دیگه هم یه وجهش این بود که اصولاً مفهوم رو ارجاع به لغت بگیم و این نقطه فنی کاره در قطع این اصل اون نکته فنی که در اده از عبارات اصولی اصول در اتقاضشون بوده نقطهش این بود اصلا و بسه نمی بگم تصریح شده لیکن انسان از خلال نکات این رو بگم یعنی دو مفهوم. اینه ما خواهیم بگم این یا اگر در لغت فارسی وزن نشده برای افاده یک معنا دو تا معنا در داره خود اگر ببینی این جاک زیدون و اکرمو خود اگر این در لغت عرب اینجور وزن شده دو تا معنا رو میرسونه یک معنا اگر آمد اکامش میکن معنا دیگه هم داره اگر نمیرم اکامش نکن این دست لحظیه اگر میرسونه مضافا به این چیزا های مذهب امن نیست، نه سنی و نه با، نه شیعه و نه با. بحث بحث لحظی است، این باید بگردیم به شواهد در لغت عرب که فرهنگ لغت برای معنی خاصی. اینا ادعاشون اینه که لحظه مثلاً این معنی شینه. خب چطور میگه اگه معنی شما در مفهوم بحث چی خب اونجا میگه هيأت معنی شون. میکنه؟ چون من ارز کردن در لغت و از اینه که معانی متعدد رو با حیات افاده میکنم لغت عرب رو حیعت تکیه داره مثل فارسی نیست زبان فارسی رو حیعت تکیه نداره اما زبان عربی رو حیعت تکیه داره ممکنه دو یا حیعت ترکیبی ناقص دو معنا میده. اگر گفت اکرم رجیلن آلمه اکرم دو تا معنی اون رجیلن آلمه این رجالان عالمم دو تا معنا یعنی این اکرام بر رجل عالم هست یا رجاله نیست ولی لزاش شما هم چی میگی جوابش میگی نه ما تو زبان عربی ما تو فارسی نیستی هیات التركیبی ناقص باشه شما معنی نداره هیات ترکیبی ناقص سرعت یه نوع ترکیبی که کامل نیست و اس و سکون تر رجول زیدون عالمون نیست دقیقاً فارسی بحثی در مفهوم که به نظر ما بیشتر اساس بحثم همینه لذا ما در بحث مفهوم اگه یاد باشه مثلا اضا اضا رو قول مهمونی میگه توکید و شرطیت هست ولی استقبال و زرطیه ببینید چون توش استقبال آمد و ظرفیت اگر زرطیه آمد زرطیه گوزه مهمم اما شرطیه گوزه مهمم بوده نکته فهمی گوشه این بود چون زرطیه مثل ترکیب ناقص مونه یه ترکیب نا به خلاف شرطیت اصلا این وضع شده برای شرطیت شرطیت هم یعنی تعلیق تعلیق اختیار دو مهمن داره خود تعلیق روشن شد پس این وقت عقلی که نیست و از توی وقت عقلی و نظام ما از کردیم چه بر این تصور محکوم و محکوم اصلا محکوم نیست چون چیزی وضع نشد لن اینجا چون در محکوم و اگر دلالتی هست اون معنا نه رو لحظ حرمت تعفیف لازمش حرمت زن اون رو معنات اما در محکوم به لحظه هم میگهد ولی دام آنس کردید هر هر اولیه بحث است که آیا ادات شد محکوم دارن یا نه دا بگیم شد یعنی وردش بند در لغت عربی یا در لغت فارسی برای افاده یه دو معنا، نه یک معنا. حالا ازاسه خب دلیل این طرف لیل این طرف بحث دیگری الان نمیخوام اون بحث بشن که بحث پس این عقلی نیست برای یک تقریب دیگر هست که نه خود این دلالت می کنه مدلول دلالت میکنه. این یک دلالت مدلولیه رب به ازاسه شرط نداره خب این چرا؟ این میخوره به حکم عقل؟ اونم مراد از عقل در اینجا گاهی به اصلاح زنده عقل جزیست اونم باید برگرده به این عقل قانونی نه عقل نظری مراده نه عقل عملی مراده اونی که ما گاهی اصلاح شده قانونی، تصانف قانونی یعنی در عالم اعتبار قانونی این طوره. که اگر معلق شد وجود اکرام بر یک شرطی لازمه قانونی مگه بکنید اما دلیل ضرورت اون لازمه قانونیش اینه. پس اولا بحث نه از مشخصات مذهبی نه بحث اهلیه صرف که ایشون گرفته. این که ایشون می‌خواد بگه این بحثا رو نصف کنید خلاص رو وا که همین که اشکالی که مرحوم سید نورالدین عاملی بکنید نمی‌شه جلو علم گیرین که اون بحثی نکنیم؟ این یه بحث لغوی بحث قانونی است اکثرا پرنجبرد اخر واژه ی یاداهون باشه مساله اصل عملی بود اصلا بیام بگیم اگر زید نیامد شک بکنیم در که اکرامش مثلا زید نیومد ما عالم شد شک میکنیم اکرامش واجبه یا نه میگیم اساس البراعت ان موضوع اکرام این هم اصل عملیه پنج تا دقیق ما در بحث مفتی باشیم حالا سه تاشو گفتیم یکیش به اصطلاح معروف همین رالی بود یه راه دیگه هم داشت یکیش لغتی بود به نظر ما بهترین نقطه همون نقطه لغتی است بهترین نقطه این است که این درماغت عرب برای دو معنا ورد شده دیگه رابطه این دو معنا یا رابطه سریع و کنایت حقیقت و مجازه رابطه این معنا اول دومه، و دومه ظهور و خفاظ یا به قول پرویز مثلا زنی را آگاه نا آگاهه حالا اون بحثه دیگه رید که الان چون را از مفصال عرض کردیگه تکرار ت را این که این بحث و ایشون عقلی قرار داده و میگن اگر غلط پیدا کردیم حجت نیست حالا اگر چیزی چیزی مراد باشه انصافا این مطلب ایشان هم درست نیست و قابل اعتماد نیست یه بحثی هم بحث ملازمات که مرحوم استاد هم آورده که غیر از استاد هم ادعی که بحث عقل ملازمات رو ذکر کنه ملازمه بین وجوب شه وجوب مقدمه حرمت شه وجوب شه به حرمت زدش این اصطلاح و مرموم استاده همه که این حکم احلیست و این قطعه هم در اینجا حجیته البته خود ایشان قبول دارند که مقدمه واجب به حکم حق واجبه اما محل بحث اون نیست من همه درشان تحصیل میکنم که سویشون این قطعه محل بحثی که در اصول هست اینکه که این وجود شرعی یا نه محل بحثی که در محل بحثی. اصولی این برس نگردن نه اصلا برسی نه تو بحث جون نیست چون ایشون می... تقریمش مثلا اینه وقتی مولا میگه برای نان بخر هم مولا هم مکلف هم پدر هم بچه میدونن که باید داره بازا دیگه معناه بکنی واجب بکنه آه خب برسی ف... ف... اصول نیسته چون بحث اصول حکم شریعی مخیل میدین خاله شو اصلا نیست اصلا نداره وجود یعنی که یعنی وجوب... تا به ملازمه شده وجودی یعنی وجود شرعی قائل نیست مثل حال خودی که وجود نداره وجودی نداره چون نیست نه نه نگاه میگن وجود عقلی لابودیت عقلی داره وجود شرعی نداره اقل اكثر نداره عزیزم. اصلا منتظر نداره. میگن عقلا هست میگن عقلا عقل حکم میکنه. حتی یه این دارم دارن اینجوری. خود مولا اینو درک میکنه. عبد درمیگه چرا داره, داره, داره. مول... من ها همین اونایی که میگفتن میخواستن یه حکم عقلی حکم کشف بکنن. به شرعی کشف بکنن. لذا رسان بگن که اگر کسی مقدمات اولا مثلا مقدمه حرام میتونه انجام داده بحث این بود حالا اکبر نان در هر دو تا خیابانه هر دو درن نانوا یکی شو از, از, از این نده هیچ وقت نپرس لازم نیست که اینو میگه نمیشه واقعا نه وجود داره نمیشه واقعا با مقدمه های حرام چون الا آخر آثاری که این بحث گذشتی من اونها واردین بدم ما اثر بحث این تریب بحثی که اومد طراحی خب برای احترام به بحثی نداریم، لکی ما دو تا تقریب اساسی برای بحث مطرح کردیم. که گفتیم بحث مثلا آنونی میشه با این تغییرش و در حقیقت اون نکته فنی به نظر ما اینه دیگه چون بحثاش بزرگه من تکرارم یه وجهی که میگم که اون بحثی اینه که ما بحث رو به صورت قراره. ما از کردیم بحث نکته قانونیش اینطوری باشه. اگر در جایی در بین دو موضوع با قطع نظر از تعلق و حکم شرعی قدقت بخونی تلازم یا تانود باشه اگر در جایی با قطع نظر از حکم شرعی از اعتبار قانونی شرعی نه اعتبار قانونی یا تلازم باشه یا تانود آیا تعلق قانون به یکی این تلازم و تانود به مقام جعل هم سر یاد می بین نان خریدن و بازار رفتن تلازم هست اگر گفت نان بخر خوب کنی. این وجودی که بیه یک از خود خواهی نخواهی تو مقام اعتباس قانون سرگر بخیل دیگه بازار هم یا نه تو مقام اعتباس و قانون این نیست قانون رفتن رو نان بخر شاره هم میتونه اکتفاق بکنه به همون تلازم واقعی نمیخواد تو دایره اعتماد بارش بکنه. به همون توانوده واقعی نان خریدن با نماز خوندن جمع نان خریدن با خوابیدن جمع میشه. این توانودش اونم کلازمه. باشه. این دکاتر ها، قانونی پیدا کرد دو. ها این بس اون نکته قانونیش اینه. همین احسن تو میذاره یا نداره؟ آخرش همین بحث یکی میگه نیست یکی میگه هست اون روشن شد روح بحث چیه روح بحث میگم چه می سازی هارون تقریبا بحث نکردند حالا نگاه بفرمایید این از اختلاس ساز بنده روح بحث اینه دو تا امره با قطع نظر از قانون با قطع نظر از اعتبار بین اینها تلازم هست یا تا قانون اعتبار دیگه پیش گیره چون گفتم همیشه بحث در چی بود تناوینی که بهش تعلقه جل نگفت و حکم بخونده یکیش هم اینه دو تا عنوان یا بینشون تلازم یا تا آنون اینا میگن اگر بین این دو خب باشن شد نقطه فندی اگر اعتبار به یکیش آمد هونیش هم بازی بود اگر اعتبار آمد گفت نماز بخون پس بازی بگه... اگر اعتبار نان بگی پس اعتبار بازی همون اعتبار بازی که نماز دخون نان بگی تو بدیون تا آن رو پس اون بحث امر شی مقدر نهی از با امر مقدمه این دو تا نکته فرنیش اینه جمعش هم اینه اون جامعش هم اینه دو تا امریز که با قطع نظر از مقام اعتبار یا تلازم دارن یا تا آنب. اعتبار به یکی خورد. طبعاً به ملزوم نه به هر مثلا اعتبار خود نماز نخون بنان نه اون یکیش اعتبار به یکی خود میگن همچنان که در مقام واقع تلازم حسیات آنود این سرایان میکنن به مقام اعتبار تو اعتبار هم دادشون تلازمت محفوظه اون طرف مقابل میگه نه سرایان پیدا نمی کنه میمونه اون چون یک امر است، اون در دایره جن نمیاد، چون تلازمت آنود واقعیه اون گفته نان بخر اون کار ندار تو بخوابی یا نخوابی نماز بخون یا نخوا او اصلا در مقام جل رو نمیگیری او کار نداره شما از خیابون بدی یا زنگان بیاره. او به مقدمات نظر نداره اصلا او نظرش پس کسی که میگه مقدمه واجب واجبه نکته فندی؟ نه تل ملازمات که خوی نوشته اون که ملازمات واقعی یکیه شه؟ اون نکته فندیه به نظر ما اینه اون بحثه میگه که تقییه من نگفتن یه چی گفتن اونا بز بنده شید در, در روی شیده به نظر من اون هم هست. هست اون دوبامه دیگه من نگفتن من نگفتن یه بحث قانونی که بحث لکیت یا قشنگ هم هست سر و شمایل کرد به یه بحث مقدر میگفتن و یه بحثید که در قانون بازش کار بشه اعتبارات قانونی اگر به یکی خورد چون بینشون تلازم یا تاامد واقعی هست این منشأ میشه که تو مقام اعتبارم سریان پیدا بکنه محمد <verbess Çati>